که لسی نوز دهمه در سال رستور و شما نوشیدنی. خدمت <تصفح> و و و من تفصیل فلم اگر در با خوبه نجدی نظریات مختلفی یکی از اون نظریات نظریهی تفصیلی زاده به تفصیل شده به این معنی که مکلب یا قطعه به حکم ایزامی داره یا قطعه به حکمه خیلی الزامی اگر قطعه به حکمه الزامی باشه یا اعتبادش و قطعهش متابقه به واقع میان یا مقالبه واقع درمیان و در موالی که مقالبه واقع درمیان و مقالبه واقع درمی واقعی یا انظامی یا غیل الزامی موالی که یا تبدیه یا توسلی یا و در خصوص موارد مصادفت تجربی و واجب توسلی کسی به انقصال که تبدیه تجربی صاحب میشه و این کارش مجینی که گفه تجربی ذاتی نیست منابراین در خصوص موارد واجب سرسلی قاعده به عدم قوم جدیه ولی در سایه موارد یعنی در پنج مورد دیگه که اون در واقع میخواد ناجب تحبیدی باشه جوزه مستنبات باشه جوزه مکروبات باشه و جوزه مبامات باشه در این موارد قائل بینید که این در تمام موارد احکام تکیبیه خمس آیله به بخی تجربیه مثل مشروب بندادن یک مورد که از موارد واجب استثنان میکنه واجب توسطی این استثنان آیا سبوتن و اصباتن تمام یا نتمامه این رو مصنف مناقشه کرده و ببونه نداره این گفتیم مبتنی بر مقدمه ای در رابطه با واجب توسلی توسطی در اصلاح اصولی چهار منصد. معنی است اول توسطی همون معنای معروف واجب توسطی در مقابل واجب ترخبی واجب تعبدی به واجبه میگن یوتبر و فیه قصدر بربن و واجب تعبدی مالا و فیه قصدر و اون تعبدی که مد نظر سایه همی و همین نصد و بین این دو تعبدی تبایون هست به نسبت چون نسبت تبایون مرموی دوبوم اینه که مالای اوتا و این مقامل انتصال به مباشر واسه به توسلی چیه دیگه اینکه مباشرت خودم رو جلد کنه میخواد مثل نماز قضای مئیده در آزانی تطمیق خود ولی بکنه یا پیسر بزرگ مباشرت لازم نیست از این هیست توسلیه در مقابله شعب به معنای با آجرگاتی که مباشرت در اون های پنجانه است که مباشرت خود انسان شرطه. نسبت بین این دو دوتا در این تفسیر دوم دو اون خصوص معنی معنای سوم و توسلی به معنای مالای اتبرتی تحب بگی از و اتفاده چیزی که در تحقه رو روی امیسال شرخاره قصد و لازم نباشه مثل ازاله نجاست قصد و التفات لازم نیست اگر اتفاقا از دست انسان لباسی نجسی بیوفته به آر در بیایی این پاک میشه قصد و التفات و عمد اینها لازم نیست نگه توسطی در مقابل تحقه که یکتبر و بیه اما و علا مثل اداه خمس یا ادای دین اینا ها قصف اتفاد رو میخواد. ما به یک نفری واقعا صد هزار تومن به بودیم بعدا اومدیم یادمون رفت یه زمانی ما یه صد هزار تومن به این هدیه دادیم بعدا یادمون اومده که به این شخص قبلا به درکار بودیم آیا اون صد تومن هدیه رو میشه دین حساب کنیم نه بخاطی اینکه قصد ایتفاد درش اشتاسی و محلی به توسلی مالای اتفادی امتصال رو جاید به واجبی میگن که امتصال مطلق درش معتبره لازم نیست امتصال در زن فرد حلالش باشه مثل شستن مسجد با آب قصدی مسجد رو باید ازال نجاست دونم بلا آبش قصدی باشه می کنید که اگه آب قصبی باشه زال نجاست تحقیق پیدا نمید امتصال مستدرش معتبره اینی در فرد حرامش هم مهمتر میشه در مقابل تحقیقی که حتما باید در فرد حلالش باشه مثل این که آیا میشه ما دین خودمون رو از پول دزدی بدیم پولی که دوزدی دیدیم میخوایم دینمون ادا کنیم آیا دین ادا میشه ادا نمیشه آیا از فرد حلالش باشه. بنابراین ها باید به نظر باشه مواردش رو خودتون تشخیص دید حالا اون معنای که صاحب کسور در اینجا مرد نظره واجب توسلی به معنای اوله یعنی قصد قربت در شرک اگر کسی تجربی کرد و خاص مخالفت با واقع بکنه و از یک واجب توسلی در آورد، در این موارد قوه تجربی ثابت میشه به خاطر اون مصدحتی که در اون واجب توسلی هست از تفسیر بی سورت قطعه به تحریم شیخ واقع قطع پیدا گرده به برمزیدی واقعا حرام نیست استفادی به توسطیلی و استحقاب به فعلی هی. یعنی این باید اقاب باشه الا در یک مورد یعنی پنج موردش قبیه یک مورد اونم از واجبات توسطیه الا انیعتبه در تحریم و واجبن. رید مشروطه به قصد قرمت اعتقاد پیدا کرده به قرمت یک شیلی که اون در واقع واجب توسطیه بوده واجب توسطیه یعنی رید مشروطه به قصد قرمت اصلا اعتقاد پیدا کرد به قرمت دفنیش میدیدی به اعتقاد این, این کافره ولی در واقع مؤمن بوده و با اینکه کافر بوده در اعتقاد این شخص تجربی کرده و دفنش کرده باید نباید دفنش می کرده دفن کرد فبان مهمنه در این موارد واجب توسلی محقق شده در زمنش و تجربی خوفش برداشته ولی در سایر موارد خوف تجربی میمونه یعنی اگه بخواد یه اگر در زنه مستحبی باشه، فتوح و مباه و واجب تعبدی باشه، در یا حرام باشه، در همین پنج صورت اوج باقیه بلکه شدت و ضعف پیدا میکنه ولی در واجب توسل اینطور نیست، به این بینها لا یبعد ادو عدم استحقاق القابه علیه مطلق. یعنی بعید نیست در این موارد مستحق اقام نباشه مطلقا یعنی که مسلحت واقعی اقوا از مقصد تجری باشه یا مصابی باشه یا ضعیف باشه فرقی نداره مطلقا او بی بعض الموارد یعنی که بعید نیست عدم استحقاق اقام بر این تجری در بعضی از موارد و اون مواردیه که مسلحت واقعیه مصابیه با مقصد تجری باشه یا اون مسلحت واقعیه بیشتر از مقصد تجری باشه از مطلقا در مقابلی با از این موانه علا کلها به این که قبه تجربی های قابله رفعه یا قابله نیست ایشون قائل به رفعه بعضی از موارد رافعه میاد او به این تجربی رو برمیدنه رافع چیه؟ اون مسلحت واقعیه مساوی باشه برمیداره؟ زیادم باشه برمیداره؟ نظرم حالا دلیلش چیه؟ چرایشون قائل شده به عدم استحقاق احقاق در این مواردی که مسلحت واقعی بیشتر باشه؟ یا ما مصادف شده باشیم با واجب توسلی؟ نظرم الى از جهت واقعیه یعنی معارضه مصلحت واقعیه لین جهت ظاهریه یعنی قبه تجربی و همدیگه معارض میشم و وقتی معارض شد به کس رو این کسان میرسه و قبه تجربی تابع می میشه ما یه کار خیلی خوب انجام دادیم این همه مصلحت در اون 90% مصلحت داره این واجب توسطی و دفن مومن حالا ده درصد صد انجام دادیم 90 درصد تا خوب انجام دادیم این رو با اون میشورن و می ازون میده حالا این ها رو دکس سالال چول ما هشتی نکنیم چون خیلی نظریه یه نیست ما نمیدونیم نظرش واقعا ق فعلی بود یا گفت فدی داره میگییم جهت ظاهری با اون جهت واقعی به کسب اننگسال می کشیم. و باعثه میکنیم کاری می این خیلی بد بوده. یا تجری خیلی بد بوده اگر ما دیدیم کاری که انجام شده محقق شده، در خیلی خوبه تجربی اصلا قوپی نداری پس یلزم بنابرای نظر صاحب فصول که نه تنها بعضی از موارد طبیع نباشه بلکه حسن هم باشه لازمه نظری صاحب فصول حسن تجربیه در بعضی از موارد ولم یه بلپی احد در قبه فاعلی که مثل بحث نداره هم گفتیم اینکه بعد از قبه فاعلی نداره ما این فعلی داریم دیدیم آره نباید بگیم افعل نداده نگفته قبه فاعلی و فعلی رو ناهی نی آورده خود شیخ انصاری هم سوء سریله و خوب ثبات آورده سن قبه فاعلی فعلی نمیگه با اون خاطر نظریه دقیق شیخ انصاری عدم قبه در تجربه مطلقه چه فاعلی و چه فعل ولی نی میگه نه قبه فاعلی داره حالا فرق این نظریه ها چیه؟ فرد که مال نظریه انصاری مزمت و قضاییه مال نائی میشه قبه اوقل عملی نظریه های فرد داره حالا حالا حال، به این نظر صاحب ما میخوایم بفهمیم صاحب خصول در مطلب موارد قائل به قمه تجری الا یک مورد. و اون واجب توسلی باشه واقعا با به خاطر اینکه جهت ظاهریه با جهت واقعیه تعارض میکنه وقتی تعارض میکنه، قمه در مقابل اون همه مسئلت واقعیی ساخت میشه دیگه برای چی بمونه تجری مگه چه قطعه داره دفتر معاجب توسلی شقدر مزید داره نوت درست این درست در مقام نوت درست چی ثابت میشه حالا دلیلیشون چیه دلیلیشون اینه که فا اینال قبه به تجربی لعیس زادی هست قبه تجربی میگه زادی نیست قبه تجری ذاتی نیست به دو دعوا بر یک یکی دعوای قبروی ایسی دعوای صغربی دعوای صغربی نفی ذاتیت در باب حسن قبه یعنی میخواد بگه که در باب حسن قب ما ادعای ذاتی نکنیم بگیم بعضی از افعال علت تامه حسن قب هم کما علیه مشغول من اصولیی و در اصول مزفرم خوندی، و بعضی از افعال مقتضی حسن و قب و بعضی لا این تقسین خلاصی رو نگیم ادعای کبروی بکنیم برای اینکه در باب حسن در باب حسن قبح ذاتی منفی نه ذاتی نداره در باب قب و حسن نمیشه بگیم این حسن ذاتیه یا قب ذاتیه برخلاف خلاف مشهور بر طبق مشهور فلاسفه و بر طبق نظریه محقق فرا... اسفحانه اینا قاعدم به اینکه حسن قب اعتباریه مثل ابن مثل مشهور فلاسفه اسلامی اینا قاعدم این حسن و قب از قضایه مشهوره است. ننگ حسن و قب ذاتی که الان معاصرین دارن میگن پس این افتحای گم روی. بگیم در باب حسن و حکم ذاتی ما نداریم ادعای صغ اینه که بگیم ما در باب حسن و حکم ذاتی داریم منطقه گم تجربی ذاتی نیست بلکه به وجوه و اعتبار به این برگشتش به اینه که گم یا ذاتیه یا اقتضایه یا اعتباریه ذاتی مثل باب عبل و ظلم عدل حسنون به ما هو میشه ذاتی ظلم به ماه و ظلم اونم ذاتیه ولی از صدقو حسنون به ماه و نافعون و اگر لگر زار باشه قبیر میشه اختضایی و در افعال مباری هم که انجام میدیم مثل شرب ما مثل مسافرت مثل هفتشاه مثل ضربهیت تیم همساالی ن هم یا یه عنوان دیگه میاد تا این افعال این که حتی عصق رو پیدا میکنه. پس افال اختییای تفسی میشن به سر هم چیزی در حضور فر خوندیم. فعل اختیاری تاارت علت تامه حسه حالارت مقتضی مختضی و سوالت هم یا ایشون میگه قبه تجری ذاتی نیست و تصریح داره به اینکه یعنی به یعنی میخواد به یه قسم ظاهرش قسم سوم منتها واقعش قسم دومه یعنی حصول میخواد بگه ذاتی نیست بلکه اختیضاییه بلکه تعبیر کرده به وجوه اعتبار، ولی مرادش که من و قصد در رابطه با اقتضاییه یعنی حسنقوب اقتضایی نه اون اعتباری که میگن لا اقتضای افغان نسبت اون قسم سوم. از قسم اول نیست قسم دوم ولی قیلی از محشین شروع زایش زادن میگی قسم سوم رو میخواد بگیر قسم دوم رو نمیخواد بگیر با اینکه نظر حصول این نیست فصول که یه باید درش باشه منطقه اقتعای ما اینه که راخه اومده تجربی مقتضی قب رو داره بنابراین از قسم دوم رو داره میگه ولی اتعای فصول اینه که رافه اومده این مقتضی رو برداشته و جلو مقتضی رو گرفته رافع چیه؟ مسلحت اون فعلی که ما انجام دادیم در پس اولین اختلافینه که آیا ایشون میخواد به قسم اول نیست قسم دوم یا سومه؟ مشهور میگن اسم دوم رو میخواد بگه ولی نظر دقیق فصول اینی که اسم دوم رو میخواد بگه و خاطر اینکه ادعای رافع کرده ادعای رافع در موارد قول مقتضیه یعنی اسم دوم رو میخواد بگه حالا تعییرش بهلواجی باید اعتباره حالا چرا بهلواجی باید اعتبار تغییر کرده این نکته دقیقی داره که شاید بشه بگی نظریه اخوند خراسانی هم همین تغییر کرد بعدن قائل به به نظریه مخالف شیخ انسالی شده این دقیقه چرا رضع اعتبار ها حالا اگر کسی خواست مراجعه کنه به اوسفال و ساید و اون توضیح ده فین نه قبه تجریه اندناله ایسه ذاتیه حالا این نزای صغربی یا کبرمیه قبه تجریه میگه ذاتی نیست یعنی نخواد بگه حسن و قبح اصلا نمیتونن ذاتی باشن یا خصوص قبه تجری ذاتی نیست اگه دومی باشه نزار صبرویه اولی باشه نزار صبرویه بنابراین قاعده حسن و قبه عقلی با این طول عرضی که فعلا قاعدن نه حسن قبه عقلی به معنای حسن قبه ذاتی که تمام اخلاق و امثال اینها رو از نظر فقه و اصول و کلام ما مبتنی برش کردن آیا همینطور که میگن هست یا نیست سابقا یه مقداری به کردیم که اینطوری نیست ما حسن قبه ذاتی نداره. به خاطر اینکه که به حسن و افعال اختیاری یه انسانه و اگر بناباشه فعل اختیاری متصف به حسن و بشه اختیار من درش دخیله وقتی اختیار انسان درش دخیل باشه از ذاتیت خارج میشه پس نمیتونه ذاتی باشه عدم به ما و عدم به حسن ذاتی نداره از لگر من رعایتش بکنم یعنی اگر فعل من باشه حسنه ویلا خود ماهیتش خود مفهومش خود اسمش اون که حسن نداره. نداری جدای خلص فاهشی شده در تأریعات متکلمین و اصولی برخلاف شیخ رئیس که ایشون خیلی در ایختر بحث کرده و اون اینکه این حسن و ذاتی که دارم میگن شاید مرادشون مصلحت و مقصدی واقعیه بین لا حسن و قب نمیتونه ذاتی باشه کاملا اعتباریه حالا اعتباری در نظر اوغلا باشه یا اعتباری در نظر عقل عملی باشه و الله حسن و ذاتی به معنای اینکه از اهکام نظری باشه یقینا منتفیه چیزی که ذاتن حسن باشه ما نظر. به خاطر فعل منه که مرتضی و شاهدی هم که برش هست اینکه اولین و آخرین مثالی که براش میزنن و خیلی مهمه میگن که العبد الحسن و, و این ذاتیت اثبات نمیکنه به خاطر اینکه خود متکلمین میگن و فلاسفه میگن عدل از صفات فعل از صفات ذات نیست از اینا قاینی میشه برای که یه خلقی بین دو باب شده باب حسنه خوب باب مسائل و مقاصد واقعی حالا منم دارم برای شنبه ی دوشنبه در سفی بنویسم برای قضیه این داریم میگیم پراکنده نشه کما که همه این چیزایی که الان گفتم همشو دارم دارم می نویسم منظم که تکیه بشه اون بدونم ما چی گفتیم شما چی دارید میگید یا دیگران چی گفتن یعنی هر چی دارم میگم نا مظروف داره میشه الان کلا این دو تا باب بر باب حسن قوم، باب اعتباریات، باب مسائل و مفاصل، باب واقعیات. حاکم در واقعیات عقل نظریه، حاکم در اعتباریات عقل عملی، یا عقل او و تو هیچ واسطه و نیست، نه حس، اون اصالت ذاتیه، اون اصالت ذاتیه یعنی چی؟ حس ذاتیه. داره ولی اون قاعده حسن قوام عقلی کی میگن؟ در اشیا میگن. قاعده حسن قوام عقلی در اشیاء، در نیست در عقال اختیاریات. آها، فرقی در اینجا داره. او خب برمی‌گرده به اون باب. یعنی حسن قوام به واقعیه. ما بگیم آقا مصلحت ذاتی ذاتیه، بودش اصل ذاتیه. خب برگشت به عالم تکوین و عالم واقع. بهشت من نهی بهشت چیز خوبیه مثلت داره نماز مثلت واقعیه داره نمیدونم زکات مثلت واقعیه داره و اسم شما بذار حسن ذاتی ولی این بابیجی پیدا مطرح بابا حسن قبعه عقلی این در اعتباریات مثلت کردن اگه اعتباری باشه ذاتیش لذا حسن قبعه مطرحه در علم اعتباری مثل علم اصول یا اختضاییه یا لا ذاتیش بنا و این دو تا باب خارج شده و شاهدش هم کلمات شیخ الرئیس رئیس و کلمات محقق اسدوان و دیگر عواظم مثل اندامه تبابوی از یه چیز بدعت نیست واقعیتیه من تا تصحیح میخواد تصحیحش برای این دو تا باب دو تا باب اینطور نیست این باب همون باب باشه اینا مرتبط به واقعه باشه، اونم مرتبط به واقعه باشه، اونم مرتبط به اختیارات باشه، اینا مرتبط به اعتباریات باشه،, باشه. خطا میشه بینینا. بین اینا. این نقوب هر تجربی اند اعلیی اگر معنای خودش که نمی یعنی و باشه. یعنی آره میشه از خیلی از جهاز ولی حالا دیگه خیلی کاری نداره حالا ما این ده صفحه جزور رو در رابطه اوزنگو پردی بنویسیم آقای این بخونه آقا حالا در درد میشه تجربی میگه ذاتی نیست بمیختل به وجوه و به اعتباران اختلافی اختلافیه یعنی همه قصد سوم ظاهرش اینه ولی واقعش قسم دوزنگو میخواد داخل پرانتز آقای برای مباحثاتشون این تجری یک صفت نفسانی وجدانیه تمرد اون یقینا ذاتیه قهر ذاتیشه تمرد عین اسیانه تجری عین اسیانه نمیشه بگیم اعتباریه اون یقینا قهرش ذاتیه ولی این تجری اصولی ها این قبضاتی ذاتی نداره من آب خوردم و چه دوزو میداره؟ آقا نه شما مخالفت واقت کردی تمام عدله و تمام امارات بنابر قول امامیه برخلاف اشعری و معتضلی اینه تریلیت داره موضوعیتی نداره من حتما باید به قد عمل بکنم حتما باید به این روایت عمل بکنم حتما باید به این اصل عملی عمل بکنم نه اینه تریلیت در واقع تمام اینهای اعتبارش بخاطه تحفظ بر واقع و مفروض که واقعی خود نشده با شراب نخوردیم ما آب پردیم لذا بر قول امامیه که قائل به ترکیت در باب حجز و امارات و عدله و اصولا هیچ کاری نداره نه موضوعیت نداره که راننده ای آقایش موضوعیت نداره ماشینش هم موضوعیت نداره خیلی چیزه موضوعیت نداره موضوع چیزی است در باب عدله و امار تمام حجنی که اصولیی بایش برپرد دارن یه طریقیت داره مهم دیست که من با هم مخالفت کردم شما با روایت صحیح و مخالفت بکنید ولی مخالفت واقع نشده باشه اشکال نداره ما قاعده به سببیت نیستیم به هیچ معنا چون سببیت سه معنا داره سببیت اشعری سببیت معتذری و سببیتی که شیخ انصاری قاعده و سببیت همون تصریبه الان این الماجم و رو چند نفر خریده و خیلی ها نخریدن برای چی نمیخرید بابون هایی که میخوان این کتاب ها رو بخونم باید اصطلاحات رو بدونن ما وقت اینو نداریم بیانی یک جهی بگیم موقع تصریب در مقابل تخته و اشایره در مقابل عقلی اشایره در مقابل معتزه این یه مصطلحاتی باید باشه وقت همه رو در بیارید به قیمت خونم که شده این کتاب واقعی باید بخنم یعنی ولو در این راه کشته بشین <تصفيق> نه مهم باشه براتون بدون کتاب آدم نمیتون دزدیدنش هر دوزیدنشم ثواب داده از معجم جامعه اصطلاحات عمده یعنی تا آخر که خواهی بخوای بری 20 سال درز خارج هم بری اصطلاحات برات واضح نمیشه الا با این کتاب کتاب کتاب مفتی نیست زحمت کشیده تعبیراتش دقیقه بعد نظریات رو واقفه بر مبانی شیستت شه... خیلی واقفه خب اینو رو نمیرده سی ازار تومن بدید. دارتو من. دارتو من. شیخ سموری میشناسمش آدم با سوار ملا مدیر حوزت الهدای بحرین احتمال قبی خب کتابش استفاده کنیم تصفیب علا اقصام سلاسه تصفیب همون سببیته سببیت اشعری سببیت متزلی سببیت امامی که در جزرهای ما هم سببیت امامی نوشتیم یعنی همون نظر مصلحه سلوکیه شیخ انصاری و این سه تا مرفوضه یعنی سببیت و با تمام اقسامش مرفوضه نیمونه همون طریقیتی که مشهور امامیه دارن میگن که اینا مهم نیست من با مخالفت کردن اشتال نده مهم تحفظ در واقع با واقع نباید مخالفت بشه اقام مال واقع نمال قصر شما به واقع سامियां این حالا درس نظریاته. یادت، ولی شما فردا می‌خوایدین برای باشید، می‌خواید متفکر باشید، می‌خواید انشاءالله هزارتاتون یک متحری بشید. نیازه به اینکه فکراتون کار بکنه. ما نمیتونیم که نکنیم چی بگیم. الان بعضی از موارد انسان خجالت می‌کشه، آه، مثلا در صدا نمیما، حرفای خیلی قشنگ نمیزنه. بی‌زرف می‌زنه. بخاطر این رو نمیدن تو مطالعه نذارید. نهایت یه بگیرم بگیرن بیان بشینن حرف بزنن. مطالعه میخواد مراجعه میخواد دقت میخواد هواس میخواد ولی بعضی از دانشگاهیا میبین نه دقیق حرف میزنن با مطالعه حرف میزند یک ساعت در مورد یک مفهوم دقیق میبینی حرف میزنن حرف ضاعد ندارن اصطلاحات مسلت باشید نظر خودتون چی میشه آخرش در قبه تجری اصلا در حسن قبه عقلی در حسن قبع شرعی نظر اشاعری چیه اشاعری همینطور یعنی بیراه گفتن رفته آیا میشه کرد این ستا نظریه رو این روایاتی که عدلیه آوردن گفتن روایات میگه حسن ذاتیه این روایات افعال ما رو داره میگه نه اشیارو چند تا کتاب در رابطه با عدل شما خوندید وقت بذارید کتاب هایی میگید اصطلاحات رو واقف بشید اصلا مباحثات شما ده دقیقش مال کلاس باید باشه و پنجام دقیقش تحقیقات خودتون هر طلبه 20 دقیق تحقیقات خودش ارائه بده چهارتا کتاب پیدا کرده مطلعی پیدا کردن رو به همدیگی بگید و انشالله بیشتر بشه مطالب بمنی کرد بشه براتون. و یک صرف به به وجوه ولی اعتبارات گمهش حالا پایین میره بعضی از موارد گفتاری بعضی از موارد ند. مثل ضرب برا تعدیب حسن ضرب برای ایزا قویه میکنیم ما چاه بکنیم آب در بیاریم خوبه چاه بکنیم مردم بیفتن تو قویه مسافرت برم برای هران برای فرار از دست قویه مسافرت برن برای سلیر این هرسن خوب این همشون اعتباریه اشکار نداریم اما نباشه در مثال مثال دقیقش مثال دقیق زدن مال اختزایی ولو اون مزفر و دیگر هم برای اسم سروه مثال اشکار نداریم فمنشته به علیه مؤمنون ورعون آلمون بکافرن واجب القدر یک مؤمن ورع آلمی رو با ملا اومد اشتباه اشتبا به کافر واجب برد بحث به انهو زال کلت آفد یه ای را آورده قیادونه ملا اومد و تجرد با اینجا واجب القتله فلم یفت این افغانی مومن وره را نگوشت و این نهولا ید تحق خود زم علا حاضل این دمن انکشف لحولو. اونا که از واقع خبردارن اینو لومش نمی کنن مذمتش نمی کنن به خاطر این که برای مبتغیر رو نکشته و این که آنه معذورم لوفه اگر اینو میکشت معذور بود به خاطر این که شبهه موضوعیه بوده مستاقیه بوده شبهه افغانیه بوده اینو اشکال نداره معذور لوفه و از هرون منزاله مثال دقیقه سر از این مال و جزمه به وجوب قتل نبی او وسیعه جزم پیدا کرده به وجوب قتل نبی یا وسی به خاطر اعتباداتش و تجرب را فلا و یک طلب و تجربی جربیه واجب انجام نداد با اینکه اعتقاد داشت، اعتباد وهابی داشته و به این اعتباد وحاوی گریش عمل نگد فلا یک الا ترا ان المول الحكيم اذا امر عبدو بقتل عدو بندهم که توتن عبدو ابن گفتو بود دشمن باید بکشیم علایم براش گفته بود اصلن اگر دو نفر شهادت بدی این شخص دشمن من حتما باید بکشید حالا دو نفر شهادت داد بر این شخصی که پسر مولاست و واجب قتلش کردن و این تجزیه کرد و نکشت میگی نه تنها قصتی سگم خوبه صادق بن عبد ابن مولا و زعما هو موزالک العدو که واجب القتله و تجرا و لم يقتله برای خود در سر درست نذاشت ان المولى اذا طلى على حالي لا يظمه على هذا تجري القبي چون که قبیه ولی مذمت نمیکنه قبیرا بهی به این که لو فعل ولو اگر این پسر مولا رو به خیال اینکه این دشمن مولاس می معذور بود و کذا و همچنین اگر مولا یک طریقی غیر از قتل رو نزد کنه و اینکه این به هرچی رسید باید به اون عمل بکنیم و امارات و بگینه و امثال اینها اقامه شد برای اینکه این, این شخص دشمن مولاست و ما تجربی کردیم و نکشیم در این موارد هم همینطور نه تنها مذمبت نداره بلکه حسن هست و کذا لو نسبن مولا لهو طریقن رفته هر کسی دو تا شاهد شهادت بده بر اینکه این دشمن منه باید بکشید بیلالقد نسبت طریقن بیلالقد الى معرفت ادوب بهی و ادت طریقو الى تعیین ابنی شهادت دادن فتجر نوالم یه برد و ها زن احتمال در این موارد میگیم ما نداره حالا مثال اولی قصد وجدانی بود ما براش مثال بیگه زدیم اشکال ندارم یه بچه های تناقضی شو یه اون تجری و که محصدش بیشتر باشه می‌خوایم دیگه که به که انجام انجام این ما بگیم نیست و انجام بشه یعنی اون انجام انجام بده اگر انجام نه نیست ذاتی چه ما در نماز خوندیم برای به باید کار روز معنا نداره روز مال گناه کرده باشیم این اشکال برش وارد اشکال دوباره هم برش وارده اینی که ایشون وارد شده به اینکه مصلحت ذاتیه که مطرح میشه معذورن لو فعل اوز در موارد جهله اگر من جاهل به واجب توسلی باشم اون اصلا نظر نداره. نداره واجب توسلی وقتی مصلحت داره که من عالم به این باشم و محفوظی که ایشون به این شخص جاهل به واجب توسلی بوده جاهل به واجب توسلی اون مسلحت ذاتیه بهش نمی بنابراین قبه تزگردی هم میمونه من اگر آلم بودم به اینکه واجب توسلی دارم انجام می اون مسلحتی به ما میدادن ما میآوردیم با این قبه عوضش می کردیم ولی وقتی من جاهل به واجب توسلی هم مسلحتی ندارم لذا معذورم لفعز بر علیه خودش از دو جهت این جهتی که من گفتم و یک جهتی که ایشون اشاره کرد نه ها که بر ساد و وارده و مصنف اینا را آورده خودش ترده و هازل احتمال این هازل احتمال جواب از یک سؤال مبتنه میگه وقتی در مواردی که اشاره و مولا اومدی گفتی از این را اگه به دشمن من رسیدی واجب القتل و من تجری کردم و انجام ندادم و بعدن هیچ مذمت متوجه من نشد بلکه به حسن ذاتی هم رسیدم این در تمام موارد امارات عدلدا هست دیگه در موارد امارات عدلدا من انجام ندم احتمال داره این ها اشتباه بشه برای چی تحقیق کنم احتمال داره امینا اشتباه باشه که نه نتناش نداره حتی به مثاله واقعی و به حسن ذاتی هم میرسم همین احتمالی که الان گفتی در رابطه با در به سر مولا و تجربی و امثال این, ها این در رابطه با امارات عدلدا هست ما چرا انجام بدیم انجام ندیم به احتمال اینکه یک مستهده ذاتی باشه بهتر از این گفته تجربی و بیشتر از گفه تجربی ما برای چی مکلف باشیم به وجوب طبعیت از امارات و چون منل محتمل که در واقع اینا برخلاف باشه یه مساله خیلی خیلی زیادی به حساب ماریخته باشند و با این قبه تجربی اصلا به حساب نیاد میگه حاضر احتمال قیل و غلائی. این احتمال غیر عقلایی که به ذهن شما میرسه ما این مخالفت بکنیم که احتمال این که به واقع بهتری ملزم باشه این احتمال غیر قلایی که یتحقق و اند المتجری لا يجری شیئا اندم صادق الواقع میگینه احتمال غیر عقلایی به خاطر اینکه محتمل رو باید در نظر بگیریم محتمل خیلی مهمه شما در باب عدل و امارات محتمل رو باید نگاه کنید اگه اومده همه اینا راست در اومد چی؟ مستقیم باید برید جهنم پس محتملش خیلی قویه لذا این احتمال میشه غیر و غلایه. احتمال ضعیف غیر معتدن و متجردی بین به این احتمال ترتیب اثر بده ولی اتفاقا اتفاقا اومده تجردی کرده انجام نداده و شانس در اینم به وجود شانس شال نداره و اگر کسی شانس رو نفیش کنه کما علیه الحکما کما المعاصرون بنابراین نمیشه اصلا گفت تجربی همینطور میمونه شانسی به این چیز رسیده ما ثواب شانسی نداریم اقاب شانسی نداریم اگر کسی قائل به تفهیم و شانس و انثال اینها باشه هر ساید کسی درست ولی اگر کسی قائل نباشه ثواب و اقاب بر فعل انسان متدفل میشه و مذهل تجسم اعمال باشه این حرفا نیست پس نمیشه حرف ساید قبول, کنیم. رو قبول کنیم که ما اینکه متکلمین و اعظم فلاسف مثل ابن سینا اینها را قبول نمی که ما بیانم بگیم شانسیه حالا شانسی شما خیلی هم خوب شد یه مصلحه ذاتیگر به شما رسید او بدا مصلحه رو وقتی به شما میدادن که به اون واجب توسطی بودی. و مفروضی که شما جاهی بودید تجری کردی به خیال خودت داری کار بز می ولی در واقع کار خوبی به ها احتمال و یه تفقه و این دل متجری لا یجریه شیعن به این احتمال نمیتونه اعتناع کنه و بیا تجری کنه و بگه اشکال نداره و اتفاقش و احتمال اینکه یه مصلحت ذاتی برسه بهتره این نه این احتمال به در نمی گره مگر اینکه روز قیامت بشه معلوم بشه که این مخالفت کرده یا موافقت کرده این احتمال لاجدیه که لم یصادف کشفه واقع. چون این احتمال عقلی نیست احتمال عقلی نیست نمیشه بهش احتنا کرد و لذا یلزم هو العقد حقل نظری این رو الزام میکنه به عمل به طریق منصوب میگه به اون طریقی نصب شده برات که با اون باید عمل بکنی عقلش اینو میگه التزام اون احتمال نفسانه دمایذایق کنه لمافیه من القطع للسلامه من العقاب این اگه به این طریق منصوب عمل بکنه ایمن از عقابه ولی اگه عمل نکنه گرفتار عقاب میشه دهند او ماله عمل بهی فإن المجنون فيه عدم السلامه من الاقام به خلاف مواردی که عمل قطع و, و باب طریق منصوب رو ترج میکنه و ان المجنون فيه یعنی مجنون در موارد ترک عمل به طریق منصوب عدم سلامت از برای اینکه محتمل رو بگیره و کار عقلایی انجام بده حتماً باید به طریق منصوب عمل بکنه و منهنالی از هر و منحونای از هر که قبه تجربی با اون مساله و مفاظت واقعی درگیر میشه و هر کدومش خالب بشه اون مقدم اینطور نیست که همیشه بگیم تجربی قبیه بعضی از موارد قبیه بعضی از موارد قبیه, قبیه قبیه نیست و منحونای از هر هر تجربی علی حرام به مکروحات واقعی اشد و منه فی مباهات ها بر حرام در مکروهات واقعیه یعنی واقعا مکروه بوده من به خیال این حرامه تجدی کردم خب این تجردی خوبش اشد از تجری بر حرام در مباهات واقعیه به خاطر که از اون بالا که ما حساب کنیم حرام واجب مکروه مستحب و مباه اینها هرچه مساله اینها بیشتر باشه خبه تجردی میاد کنیم بنامه این دو کفه ترازو میمونه اگه اگر عمر زیاد باشه این بر کم میشه بلکه تعادل بین این پنج تا حاصل بشه هر مسلحت ذاتیه بیشتر باشه قوه تجری ضعیفتر. و هر که مصلحت کمتر باشه قوه تجری بیشتره و اون چیزی که مقدم میشه اونه که غالب بشه حالا قوه تجری غالب بشه یا مسلحت ذاتی اون فر غالب بشه قاعده به کسر انکسار در اعتباری یاد شده با اینکه اختصاص به تکلیم یاد داره و خوابی ها اشبت و منفی منلوبات ها. و یک یعنی یک سل قبه به اختلاف این مراتب مندوبات و مباهات و مکروهات زرفن و شدتن کلمکروه ها همه خلاصه 5 خلاصه پنجتا حکم تکلیفی داریم هرچه با خاطر اینا زیاد باشه قبه نجری پایین میاد. اگه مستعدین ها کمتر باشه قبه تجربی بیشتر میشه بعضی از مواردم تجربی اصلا قبهی نداره در نظر ساکتون با اون تنها موردش اینه که ما در ضمن تجربی واجب توسلی انجام داده باشیم و یوم ان یورا آفل واجبات الواقعیه ما اقوا اقوام جهات تجربی و جهات جهات اون ماجب واقعی و جهات تجری یعنی قومه تجربی رو مراقب کنیم یا بزدهت داتیه اون ماجبات واقعیه رو هر کدومش بیشتره لذا قائل به این که اعتباریه این طور نیست که بیم قومه تجربی ذاتیه به محض اینکه که پیدا کنه و مخالفت کنه این قدیب براش نوشته میشه این طور نیست بعضی از موارد این گفن برداشته میشه از هر مسادی در نظریشونی که ما امتصال کرده باشیم در ضمن این تجربی یک ماجب توسلی رو امتها کلامو رفع مقامو حالا اشتالات مصنف و محشین بر صاحب خصول که اینها نوعا برمیگرد به بحث های کلامی. ولی ولیشون مهمه با دقت آقایون به مباحث حسنق و برقی مراضیشون انیادم با دقت بخونی که شبهی در ذهن نمونه شد خب مشاير گفتن رو اگه از به حال تطبیق <تصفيق> دادن برای ما ما